بسم الله الرحمن الرحيم الكناية كناية بيرو قوائده القواعد الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى كناية لفظي كإطلاق شده ولي منزورة أذان المعنى بودك أزش لازم إيش کناه لفتیست که اطلاق شده ولی منظور از آن چی بوده؟ اون معنای بوده که ازش لازمان گرفته میشه با یک فرق که در بحث کنایه میشه خود معنای حقیقی رو چی کار کرد؟ اراده کرد برخلاف مجاز در مجاز ما قرینه ای داشتیم که مانع از این می شد که ما به معنای حقیقت چش کنیم ولی اینجا نه اینجا جایزه که بهمون معنای حقیقی هم چکارش کنید حملش کنید یعنی مکنیون به ببینید ما اینجا دو اصلاح داریم یکی بهش میگن مکنیون به یکی میگن بهش مکنیون عنه مکنیون به همون معنای ظاهریش هست همون معنای چیش هست؟ و اون معنای مورد نظر گوینده رو میگن چی؟ مکنیون عنه مکنیون حالا دقت کنید تو امثله میگه الکنایه لفظ الاطلق و اريد به لازم و معناه معجواز اراده ذلک المعنای کنایه لفظی است که مطلق اطلاق شده ولی اون معنای لازمی منظور گوینده بوده با جایز بودنه اراده کردن خود معنای ظاهر خود معنای که لفظ میده ام قاعده 27 و آخرین قاعده از کتاب بیان تنقسم الکنایه با اعتبار المکنی عنه ثلاثه ثلاثه تقسیم میشه کنایه به اعتبار مکنی عنه یعنی اون معنایی که مورد نظر گوینده هست اون معنایی که مورد نظر کی است گوینده است به قسم فإن المكنية عنه قد يكون صفة أن مكنية عنه جاه مغجاس صفاتهس، وقد يكون موصوفاً وجاهجاس موصوفهس، وقد يكون نسبة وجاه مغني نسبتهس. يعني إثبات صفة براء موصوفي. یا آن، بحث نسبت اینه دیگه شد چیزی دیگه نسبت میدی یا نفعش میکنی خب یا اثباتش میکنی یا نفیش میکنی اینو میگن نسبت داده حالا بیاید روی امثله تقول العرب فلانتو بعیدتو محو القرطی عربا میگن میگند فلان زن دور هست فاصله فرودگاه گوشواره اشا گوشواره اینجا گوش نست میشه فرودگاهش این کتفه موقعی ای که میاد میگه آقا بین فاصله نرمه گوش تا کتفش فاصله هست محول قرت این فاصله رو میگند نگرم ما هو القرد؟ قرد یعنی گوشواره. خب. از این چی چیزی لازمی میشه؟ این... نه موقعی که ما میگیم آقا گوشواره درازه معنیش اینه که گردن شمس چیه؟ گردن در گردن درازه بابا کنایه از گردن چیه؟ گردن از از گردن درازیه. به جای این که عربا بگن این زن گردنش درازه چی میگه؟ میگه فلان تو بعید تو محو قرضی. این کنایه از گردن درازیه. آهوس، آهوس فتیه. تو فارسی داریم ولی با اصطلاحات خودشون. بعدل <تصفيق> بیت میگیم ان الله اژل بس ها خوب و قا قالت الخنساء فی اخي اخيها سخرين شاعر خنساء شاعر خنساء در وصف برادرش سخر میگه طويل النجادي رفي العمادي كثير الرمادي اذا ماشته آ در باب اكناعي برادرش رو وصف میکنه چی میگه؟ میگه برادرش طویل النجادی بندش همشیرش درازه یعنی بدون که قدش درازه آه؟ رفیع العمادی بلند پایه هست کثیر الرمادی اذا ماشتا خاکستراش در زمستان زیاده آقا بجا این که بگه این زیاد پخت و پز داره منده در خونش بازه میگه خاکستراش چیه؟ یعنی اینجا زیاد آتش روشنه خب با آتش غذا درست میشه دیگه خاصه با این ترکیبا بگه که برادرش انسان شجاعیه انسان بزرگیه و انسان بخشندیه هست ولی در این حال میشه اینو بهمین معنای ظاهریش هم چکار کرد؟ حامل کرد برخلاف مجاز بله واجا؟ بله؟ بگو ایدن سر کلاس و نه طلاب سر کلاسی آخر بگو زنگ جنه پرید بگو زنگ جنه علا و وقال آخر في فضل دار العلوم في احياء لغت العرب شاعری دیگه در فضیلت مدرسه دار العلوم در زنده نگه داشتن زبان عرب اینجوری گفته اون نقشی که در احیای زبان عرب داشت دار العلوم گفته وجودت فی کی بنتو ادنا ندارن ذکراتها بداوة الأعرابی تصات یازه نیم نه یازه یازه دقت داشته باشید میگه یافت در تو این کاف به همون مدرسه برمیگرده ای مدرسه ادار الولو یافت در تو بنت عدنان خونه یعنی زبان عرب ها ذکرتها بداوۃ العرب بیادش انداخت این مدرسه همون ابتدایش رو که چطور این زبان چی بود شکوفا بود وقال آخر ديگري قفته الضاربين بكل أبيض مخدم والطائنين مجامع الأدغاني والطائنين مجامع الأدغاني در این شماره چهارم اگر دقیق کنید مجامع الادغان به چی میگند باقیم یعنی کینه آقا ابغان جمع شه کینه ها کجا جمع میشن؟ در در دل در کجا؟ در قلب فس اگر ما اینجا دقت کنیم بیت ادنان و همون مجامع و الابغان اینا کنایه به کار رفتند از یه چیزی ای که لازمی هست برمانشون. لذا هر یکی از این دوتا کنایه از چیشون هست کناه از موصوفشون که همون مدرسه باشه او قلب این اولی از داربین همیده؟ همینو بده از از از من؟ یه لحظه کدوم ما میگی؟ از داربین داره که اسم فائل جمع هست یعنی زنندگان با هر شمشیر بران متوجه شدی؟ والطاعنين مجامع الادغان و تعنه با چی با نیزه دید. و با نیزه می دلهای پر از کینه رو این نه اینجا در کدوم یکی؟ مفعول نیست این دقیقه یه مفعول نیست این باید مفعول که نیست قد موضوع ثانيه ان وقال مار شما جوری نوشته دیگه نه؟ وطاینین مجامع الادغانی با تواجبه اینکه فیلش حسف هست با تواجبه اینکه فیلش چی هست؟ فیلش حسف هست این زاربینه شده منصوب خب اگر فیلش آنطور که در پاورغی گفته امدحو هست این دیگه میشه مفعول بهی میشه مفعوله؟ یعنی امدحو الضاربین بکلی ابیادا ذمن و طاعینین مجامع الادغانی معنیش هم اینجوری میشه ما میکنم کنم زنندگان را با شمشیر بران و تعن کنندگان را زخم کنندگان را و آنان هایی را که ضربه میزنند دل های پرکینه راطعم میزنند چی را؟ تعن زربه نیزه رو تنها اون ضربه لظ رو میگند. متوجه شدید؟ اون جرح رو میگند خب. پس بنت دنان و مجامع ادغان اینا کنایه هستند از همون. موصوف اما دقیق داشته باشید در مثال بعدی المجد بین صوبه میگه مجد بین دو لباست هست و الكرم و مل و برده و کرم هم بپوریه برده در مثال آخری نسبت داده مجد و کرم رو به چی چیزی؟ بیدو. به لباس به برد اینا همشون لباسن. لباس هم ولی نوعشون چی کار میکنه؟ فرق, فرق داره در حرق. اینجا به این میگن کناه از نسبت به این میگن کناه از چی؟ چرا؟ چون اینجا شما یه چیز رو به چیز دیگه؟ چیکار کردید؟ نسبت دادی میگه که المجد بين صبيك والكرم ملء برديكه که اینجا به جای اینکه می اومدی مجد و کرم نسبت میدادی به همون شخصی که داری باش حرف میزنی اومدی و نسبتش دادی به چی نسبتش دادی به همون چیزی که اون شخص بهش متصله یعنی به لباسه دیگه بهش وصله دیگه نه در تنش باره. پس دو مثال اول از اصفت بود دو مثال بعدی کنایه از مصوف و این آخری هم کنایه از نسبت هست تو در امین ویسال چهارا یعنی ایجا چطور مثلا لازیمه از چی گریفتش دست کدوم از ظاریبین بکولی عبی ازیمی این مجامع الادغان مجامع الادغان اون به تائینی نمی رو چی کچی رو میخوای بگی میخوای چی بپرسی این ظاریبین هر بهم هر رفتش داره لازیمه هر مثلا اعرابشو داری میگی وجیمون وجه بلاغی در این شماره چار مجامع الادغان هست که اینجا مجامع الادغان مجامع الادغان مجامع, الادغان مجامع, الادغان مجامع, الادغان مجامع اینجا که جمع بشه جمع لازیمه اینجا آره شعر میخواسته بجه این که بگه که اینا دارن قلوبو و تعنه میزنند ضربهش میزنند به جای قلوب چی کلمه ای رو کار برده؟ جاید. آره و کلمه قلوب از این مجامع الادغان فهمیده میشه چون مجامع چیه اونجایی که حقد جمع میشه؟ سینه, سینه و قلب پس تا اینجای کار بحث کناهی هم خدا را شکر تمام شد البته این کتاب خیلی مختصر بحث میکنه وگرنه در کتب طولانی هر یکی از اینا به اعتبار, به اعتبار مختلف تقسیم بندی داره اینجا فقط به اعتبار مکنیون انه اومد چه کرد. اعتبار دیگر تو اینجا ذکر نکرده که در کتب مفصل تر ذکر میشه